هر چند پیر و خست دل و ناتوان شدم هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای حممت خود کامران شدم ای گلبون جوان بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود در مکتب غم تو چونین نکتدان شدم قسمت حوالتم به خرابات می کند هرچند کنچنین شدم و آن آنچنان شدم آن روز بر دلم در معنا گشوده شد که ساکنان در گه پیر مغان شدم در شاه راه دولت سرمد به تخت بخت با جام می به کام دل دوستان شدم از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید ای منز شر فتنه آخر زمان شدم من پیر سال و ماه نیم یار بی وفا بر من چو عمر می‌گذرد پیر از آن شدم دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازا که من به عصرگوناار از زمان شدم